موسیقی به نام خدای یگانی مهربان سلام بولوار خاطرات ما خالی از افسانه های بیادماندنی و شیرین نیست چه بسیار که گوش جان به افسانه های دلنشین و جذاب پدر ها و مادر بزرگ ها سپردیم شب سرد زمستون و کرسی های گرم و صدای پیر و شکسته اما دلنشین که از ورای زمان و مکان سخن می گفت و بر دل و جان ما می نشست افثانه که پر از حکمت و دانش و عبرت بودن و بسیار شیرین و شنیدنی افثانه که ما رو به سفرهای رنگین و خیالنگیز و دنیاهای شگفت و پر رمز و راز قهرمانان بزرگ می‌بردند، بردن افسانهایی که در ظاهر ساده و روون اونها سخنان امیغ و نغز و تفکرات والایی نفته بود افسانی از مردمان سرزمین اسکاتلند رو براتون نقل می کنم به نام مایکل اسکات برگرفته از کتاب افسانه های مردم اسکاتلند اثر دونالد ای مکنزی با ترجمه از سارا شمس روزی روزگاری در سرزمین اسکاتلند مردی به نام مایکل اسکات زندگی می کرد که همه که مردم شهر اون رو به عنوان معمار بزرگی می‌شناختند. اون با همه رفتاری دوستانه و منصفانه داشت و از این بابت مورد احترام همه بود. هر کسی میخواست خونه یا پولی بسازه به سراغ مایکل افسانه ما میرفت. اون هم با کمک آدم های کوچولو که دوستانش بودند یه شب با دقت و مهارت کامل کار رو تموم میکرد مایکل علاوه بر معماری قادر بود با داروهای شفادهنده خودش زخمها رو خوب و بیماران رو درمان کنه به نظر مردم مایکل افسانه ما یه جادوگر نیکوکار بود مایکل در جوونی آزم سفر شد تا به ادینبورگ بره در این سفر دوتن از دوستانش اونو همراهی میکرد روزی وقتی از تپهی بلند بالا رفتن چون خسته بودن کناری به استراحت نشستن. مدتی بعد صدای بلندی مثل زوزه باد شنیدند به طرف صدا برگشتن و متوجه شدن مار سفید بزرگی به طرف اونها در حرکت و به اونها نزدیک میشه. دوستان مایکل در حالی که از ترس و وحشت فریاد می پا به فرار گذاشتن. اما مایکل که مردی شجاع و نترس بود در حالی که چوب دستی خودش رو محکم در دست فشار میداد، منتظر مار سفید موند. وقتی مار به مایکل نزدیک شد و سرش رو مستقیم بالا آورد تا حمله کنه دهان خودش رو باز کرد و زبون دوشاخش رو مثل نیزی بیرون آورد. مایکل با ضربه ناجهانی محکم چوب رو به بدن مار کوبید و اونو ستی که کرد. بعد با آرامش برگشت و دوستانشو صدا زد و همراه اونا براه افتاد مایکل و دوستانش کمی که راه رفتن به خونه ای رسیدن که پیرزنی دانا در اون زندگی میکرد. خورشید داشت می میکرد که اونها در زدن و از پیرزن خواستن اجازه بده تا شب رو در اونجا بمونن. پیرزن هم قبول کرد و اونا رو به داخل خونش دعوت کرد. یکی از دوستان مایکل ماجرای ماری رو که مایکل با چوب دستیش کشته بود برای پیرزن تعریف کرد. پیرزن گفت شما مطمئنین که اون مار سفید کشته شده؟ مایکل جواب داد بله بله کاملا مطمئنم من بدن اونو به ستی که تقسیم کردم پیرزن گفت ولی پسر جون اون مار سفید در مار نیست اون قدرت جادویی داری که میتونه قسمت های جدا شده خودش رو باز به هم وصل کنه مایکل با ترجم پرسید وصل کنه؟ چجوری؟ پیرزن گفت یه بار مردی شجا به اون مار سفید حمله کرد و بدنش رو دونیم کرد قسمتی که سر مار به اون وصل بود به طرف نهر آبی خزید و داخل آب شنا کرد و دوباره برگشت و به قسمت دوم چسبید و باز یه مار کامل شد و در آب شفا بخش نهر شنا کرد. اگه کسی که به وسیله این مار گزیده بشه بتونه با عجل خودش رو قبل از مار به نهر آب برسونه و در آب شنا کنه نجات پیدا میکنه. ولی ماری که اونو گزیده فورا می میره. مایکل گفت مادرشان شما اطلاعات زیادی درباره این موضوع داریم. این خیلی خوبه. پیرزن گفت تو خیلی خوششانس بودی که تو نیستی مار سفید رو بکشی اما ممکنه یه بار دیگه این مار به تو حمله کنه و تو شانسی برای نجات خودت نداشته باشی این مار بعد از اون که سلامتی خودش رو به دست آورد حتما از تو انتقام میگیره و این بار موقع نزدیک شدن به تو هیچ اختار و علامتی هم از اون نمیشنبی مایکل گفت اما من که قصد ندارم دوباره روی اون تپه بلند برم پیرزن گفت چه تو روی تپه بری و چه نری اون مار سفید در جستجوی توه و دیر یا زود تو رو پیدا میکنه مایکل با نارتی گفت لعنت به این شانس حالا چیکار کنم چجوری میتونم از شر این مار در بمونم پیرزن گفت فورا به محلی که مار رو کشتی برو و اون قسمت وسط ما رو بردار و بیار زود باش وقتی زیادی نداری مایکل حرف پیرزن دانا رو پذیرفت و به تنهایی براه افتاد بله مایکل افسانه ما به تنهایی راهی تپه بلند شد به سرعت خودش رو به محل کشه شدن مار رسوند و قسمت سوم بدن مار رو پیدا کرد اما از قسمت سر مار خبری نبود که نبود و فهمید که تمام حرف پیرزن دانا درست بوده حوادش تاریک می و مایکل فکر کرد وقت مناسبی برای رفتن به نهر آب نیست. چون قسمت سر مار هم به اونجا رفته بود پس تکیه وسط بدن مار سفید رو که هنوز تکون میخورد برداشت و با عجله به طرف خونه پیرزن برگشت آسمون تاریک بود و ستاره توی آسمون میگرخشیدند مایکل نگران بود و پاهاش از ترس میلرزیدن بدون اون که به پشت سر خودش نگاه کنه شتابان به طرف خونه پیرزنگام برداشت وقتی به سلامت اونجا رسید خوشحال بود که دیگه از جادو و افزون در امان میمونه. پیرزن قسمت سوم بدن مار سفید رو از مایکل گرفت و گفت حالا غذای ای برای تو و دوستانت آماده میکنم باید خیلی گرسته باشی ها؟ پیرزن اینو گفت و به آشپزخونه رفت و شامی آماده کنه. مایکل خیلی درش میخواست بدونه چرا این پیرزن به اون و دوستانش کمک میکنه و با اونها رفتاری مهربون و خوشایند داره اصلا میخواست بدونه این پیرزن با این سن زیاد چجوری این همه روحیه و انرژی داره و مثل یه دختر جوون و شاد میخنده و کار میکنه وقتی پیرزن قسمت سوم بدن مار سفید رو با آشپزونه برد مایکل بیشتر به پیرزن مشکوک شد و تصمیم گرفت مراقب باشد تا شاید سر از کارهای اون در بیاره و بفهمه پیرزن چی کار میخواد بکنه مایکل افثانه ما بعد از بان مود کرد که کمی بیماره و به آشپسخونه رفت و کنار آتیش نشست و به پیرزن گفت آه احساس میکنم حالم خوب نیست اگه کنار آتیش بشینم شاید کمی بدنم گرم بشه و حالم بهتر بشه دوستان مایکل به رخت خواب رفتن پیرزن ظرفی رو روی آتیش گذاشت و رسمت وسط بدن مار رو داخل ظرف گذاشت مایکل که متوجه این کار شده بود حرفی نزد و وانمود کرد که خوابه. گوشت مار توی ظرف شروع کرد به جلز و ولز کردن. پیرزن وارد آشپزخونه شد. در ظرف رو برداشت و نگاهی به داخل اون انداخت و با انگشت گوشت مار رو لمس کرد. یه دفعه خروسی روی بوم خونه با صدای بلند قوقلی قوقو سرداد مایکل چشماش رو باز کرد و با شگفتی به اطراف نگاه کرد پیرزن گفت فکر کردم خوابی مایکل جواب داد نه نه متاسفانه چه سعی کردم خوابم نبرد پیرزن گفت بس اگه نمیتونی بخوابی بهتر یک کمی به من کمک کنی من خستم و دوست دارم بخوابم دارم قسمت وسط بدن ما رو میپزم باید مواظب باشه که نسوزه وقتی گوشت خوب پخت خبرم کن. اما مواظب باش قبل از اون به گوشت ما دست نزنیم. مایکل گفت بسیار خوب من که نمیتونم بخوابم سعی میکنم کاری رو که گفتیم درست انجام بدم. پیر زن به رخت خواب رفت. مایکل هم کنار آتیش نشست و به ظرف غذا نگاه کرد. وقتی احساس کرد که غذا پخته ظرف رو از روی آتیش برداشت و قبل از اینکه که پیر زن صدا کنه فکر کرد باید همون کاری رو که پیر زن انجام داده اونم انجام بده بنابراین در ظرف رو برداشت و انگشت خودش رو داخل مایه داخل ظرف کرد نوک انگشت مایکل بدجوری سوخت و تا انگشتش رو داخل دهنش برد خروس روی بوم خونه بالهاش رو یه بار و هم کوبید و, با و بلند سر داد و، پیرزن و بیرار کرد پیرزن سراسیمه از رختخواب بیرون دوید مایکل احساس کرد که باید مایه داخل زرف یک قدرت جادویی به اون داده بشه چون معلومات و دانشها بود که به مغز اون هجوم می آوردن و اون می دونست که قدرت پیشگوی آینده رو هم داره و می تونه افکار مردم رو بخونه و قادر در درمان بیماری ها به مردم کمک کنه و از این بابت احساس خیلی خوب و خوش آین دیدشت پیرزن با عجله وارد آشپزخونه شد و با صدای غمگین به مایکل گفت: "آ چرا صدام نکردی؟ باید زودتر از اینها به من اطلاع میدادی. مایکل حالا منظور پیرزن رو میفهمید. اگه اون پیرزن رو صدا زده بود، پیرزن اولین کسی بود که از غذای داخل ظرف میخورد و اون وقت صاحب تمام قدرتی می شد که حالا اون در اختیار داره. پیرزن گفت: ما رو من کشنم پس من باید اولین نفری باشم که از آب گوشتون میخورم مایکل گفت من به راز دانایی تو پی بردم و حالا من هم از دانایی زیادی برخوردارم پیرزن گفت حالا تو میدونی که صاحب چه قدرتی هستی چون از همه داناتری میتونی در درمان بیماری ها به مردم کمک کنی و فرشته ها و پریان دستورهای تو رو انجام میدن و من مایکل کلام پیرزن قطع کرد و گفت و تو باید قول بدی دوست خوبی برای من باشی و پیرزن هم پذیرفت و کنار مایکل نشست و هایی رو از اون پرسید و مایکل فهمید چقدر راحت و آسون به سوالات جواب میده اونا تا سپیددم نشستن و با هم صحبت کردند بعد مایکل و دوستانش آماده رفتن شدند پیرزن سپونه مفصلی برای اونها تهیه کرد و گفت منو فراموش نکنین چون برام خیلی عزیزین مایکل هم گفت مطمئن باش مطمئن باش که همیشه تو رو به خاطر خواهیم داشت و خوبیهایی تو رو هیچ وقت فراموش نمی کنین. به بعد از پیرزن دانا خدا حافظی کردن و به راهشون ادامه دادن مایکل و دوستانش سفر خودشون رو ادامه دادن رفتن و رفتن و رفتن تا اینکه غروب شد یکی از دوستان مایکل گفت: ما امشب توی ادینبورگ میمونیم و کمی استراحت میکنیم نه؟ مایکل گفت البته که میمونیم ادینبورگ جای قشنگ و زیباییه دیدنیهای های زیادی هم داره فردا یکمی توی شهر یکی از دوستان مایکل خندید و گفت <تصفيق> مثل اینکه فراموش کردین ما تازه امروز سفرمونو شروع کردیم مایکل چوبی رو که از روی زمین برداشته بود توی دستاش محکم فشار داد و به دوستانش گفت بیاین بیاین سوار این چوب بشیم تا ببینیم چی پیش میاد دوستان مایکل فکر کردن که اون با اونا شوخی میکنه اما مایکل باز اونا گفت بیاین دیگه باید این چوب رو سفت و محکم بگیرین اها آفرین دوستانش که حرفونو جدی نگرفته بودن چوب رو محکم با دو دست خودشون گرفتن. مایکل فریاد زد چوب من ما رو توی شهر ادینبورگ بچرخون میخواییم دیدنی های شهر رو از نزدیک تماشا کنیم. با گفتن این حرف مایکل چوب روی هوا بلند شد. دوستان مایکل از ترس چوب رو مکم گرفته بودن و چوب به طرف ابرها پرواز کرد بعد بالا و بالاتر رفت و به سرعت باد حرکت کرد تمام شهر زیر پای مایکل و دوستانش بود اونا از دیدن شهر و آدماش که ریز ریز به نظر می رسیدن به حیجان اومده بودن و از خوشحالی فریاد می‌کشیدن. کشیدن برف برف برستر و بدنشون می‌نشست. اونا اونقدری بالای آسمون شهر ادینبور چرخیدن و پرواز کردند تا ستاره ها توی آسمون پیداشون شد اون وقت چوب شروع به پایین اومدن کرد نمیتونید تصورشو بکنید وقتی مایکل و دوستانش با سرعت پای خودشون رو روی زمین گذاشتن چقدر خوشحال و حیجان زده بودن مایکل و دوستانش به سمت مرکز شهر ادینبورگ به راه افتادن اولین مردی که اونا رو دید ایستاد و زیر نور چراغ‌ها به اونها خیره شد مایکل پرسید چه چیز عجیب غریبی دیدی؟ چرا اینجوری به ما نگاه میکنیم؟ مرد گفت برف برف روی سر و کلاه و شونه شما برف چسته و با گفتن این حرف از ترس پا به فرار گذاشت چون فکر میکرد با جن و پری روبرو شده آخه حقم داشت روی اون گرمای تابستون دیدن برف روی کلاه و های مایکل و دوستانش باید هم عجیب و غریب باشه مایکل و دوستانش به مهمون خونه ای رفتن تا شام بخورن و کمی هم استراحت کنند. صبح روز بعد دوستان مایکل تصمیم به خداحافظی گرفتن و میخواستن راه خودشونو ادامه بدن و کارهای مهمی رو دنبال کنن. مایکل لبخندی زده گفت امیدوارم بتونین توی کارتون موفق باشین یادتون باشه اگه کاری داشین روی کمک من حساب کنین. بعد رفتن دوستان مایکل اون تنها شد اما به زودی معروف ترین ادینبورگ شد و هر کس خونه یا پولی بسازه به سراغ مایکل افثانه ی ما می اومد. اون هم با کمک پریها و آدم های یه شبه این کار انجام میداد چون اون صاحب قدرت فوقلادهی شده افثانی مایکل اسکات رو از مردمان سرزمین اسکاتلند براتون نقل کردم برگرفت از کتاب افسانه های مردم اسکاتلند اثر دونالد ای مکنزی با ترجمه از سارا شمس افسانه ها از قومی به قومی و از ملتی به ملتی دیگه سفر می و هر ملتی بر اساس فرهنگ مکان عقاید و آرزوهای متفاوتش تغییراتی در اونها ایجاد میکنه. مفاهیم عمیق و ترهای زیبا و نکات تنز و پندها و عبرتها از ویژگی‌های های ارزشمند افثانه است. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح پور ویراستار سهیلا کریمی اخدا اجرا مهران دوستی سدابردار اکبر میکاینه تیگه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرو